در یافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او پیش پادشاه. بعد از آن برخواست از مشاه کرد. شاه را آن شمه آگاه کرد. گفت تدبیران بود کن مرد را حاضر آریم از وفا این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور با زر و خلعت بده او را قرور